بسم الله الرحمن الرحیم الفصل و الوصل آه ما برای وصل آمده ایم نبرای فصل یک ببین اینو در دو جا درس میده در دو درس درس, درس اول مواضع فصل و درس میده که یعنی چه جاهای ما نباید عطف بدیم جداشون کنیم جمله ها رو و در درس بعدی جایگاه های وصل و درس میده اخه اینجوری نیست که شما بیای مثلا هر جمله رو وصل کنی یا فصل کنی آه؟ بعضی جاها اگر فصل کنی اشتباهه بعضی جاها اگر وصل کنی چیه نباید هر کجا مثل این حرف عطفوازش نمیتونی بیای مثلا حرف عطفو هر کجا اینا رو توضیح میده در این درس بیا روی قواعد قاعدة 62 كتاب الوصلو عطف جملتين على اخرى بالوابه خودش ميگه وصل چهست؟ ميگه وصل عطف دادن جمله بر جمله ديگر بر وسيله والفصل ترك هذا العطف وفصل چهست؟ ترك کردن عطف ولكل من الفصل والوصل موادعو خاصتون هريكي از فصل ووصل جایگاه های خاص خودشونو دارند قایدش هستو سووم میگه که یجب الفصل چه جاهای فصل واجب است یجب الفصلو بین الجملتینی فی ثلاثتی مواضع واجب است فصل بین دو جمله در سجا آقا جا باید فصل بکنی نباید عطف بدی اون جا چه هستن؟ هر رو میاره یک علف ان یکون بینهما اتحاد تام؟ زمانی که بین دو جمله اتحاد تام باشه، یعنی دیگه حرف عطفی ناره. زمانی که بین دو جمله چی باشه؟ در امثله اینا رو میاره. و ذلک به ان تکون الجمله تو و این اتحاد تام میگه در چه حالت‌های رخ میده؟ و این زمانی است که جمله دوم تأکید جمله اول باشه، او بیانن لها، یا بیان باشه برای جمله اول، بیانش بکنه. او بدلا منها، یا بدل باشه ازش. هر سه مثال و يقال حين اذن ان بین الجملتين کمال الاتصال درين حين گام گفته میشه که بین دو جمله کمال اتصال وجود داره در این سه حالت که جمله اولی دومی تاکید جمله اول باشه یا بیان باشه یا بدل ازش باشه میگیم چی وجود داره کمال اتصال و زمانی که کمال اتصال بین دو جمله وجود داشت فصل واجبه فصل چیه مونی. واجبه تو دنجاز د لوزی بین الجملتين کاملا یا رفع څنګه موږ د بینه د بیا موږ څه مګیم څه کمال اسم انه هست چرا میماره مرفوعه بینه خبره بینه خبره اینجا خبر مقدمه بر اسم شده. خب خبر که ماله اعرابش دیگه کی باشه نمی‌شه ول، ولی ولی ولی ولی اینجا بله ولی اینجا اینجا در این مثال خبر قبل از اسم اومده از اسمش اومده بله به این کمال منصوبه. یعنی از چه باز مثلا بینه خودش ظرف مبنیه دیگه, دیگه بله ان یکون بینه هما تام حالت دوم که فصل واجبه بین دو جمله اینه که برخلاف حالت اول که اتحاد وجود داشت کمال اتحاد یا همون کمال اتصال اینجا تبایون تام وجود داشته باشه بین دو جمله زمانی که بین دو جمله تبارون تام وجود داشته باشه باز هم واجببه که چی بشه؟ فاصل بشه اگر یکاکول بین هم و تام حالت دومین هست است که بین دو جمله تبارون تام وجود داشته باشه یعنی جداایی تون چی جداایی ودل که به انتخت این در چه حالته میگه به انتختلی خبران و انشااند از جهت خبر و انشا بودن با هم دیگه چی داشته باشند فرق داشته باشند او به ال تکول بین هم ما یا اینکه هیچ گونه مناسبتی بینشون وجود نداشته باشه و يقال حينئذ ان بين الجملتين كمال الانقطاعی دارین هنگام گفته میشه که بین دو جملهی وجود داره کمال انقطاع وجود داره اونجا کمال اتصال و اینجا کمال انقطاع پس اگر کمال اتصال وجود داشت باید فصل بشه بین دو جمله اگر کمال انقطاع وجود داشت باید فصل بشه بین دو جمله و حالت سوم ان تكون الثانيه جوابا ان سؤال يفهم من الاولى حالت سهم این است که دومی یعنی جمله دوم دو جوا در جواب باشد از سوالی که از جمله اول فهمیده میشه ها شما از جمله اول یک سوالی میفهمید که در جمله دوم دو جواب همون سوال داده میشه در این حالت هم باید بین دو جمله فصل باشه ويقال حينئذ اذن ان بين الجملتين شبه كمال الاتصال قفتميش دارين هنقام كبين دو داره شبه كمال الاتصال شبهش أه؟ كمال الاتصال ليس وشبهش اجرا شون جواب عبالي راب دار بهم ديك خلا بيدر امثلة انارو توزيم دي مواضع الفصل جايقا هاي فصل الامثلة قال ابو الطيب وما الدهر الا من روات قصائدی میگه روزگار نیست جز راوی قصیده های من راوی چکامه های من شعرای منو داره روزگار چکار میکنه روایت میکنه همین معنا رو داره در جمله بعدی ترکید میکنه اذا قلت شعرن اسبحت اسبح ده رو شدن میگه زمانی که من شعری رو بگم روزگار داره اون چکار میکنه میسورایه خب در جمله اول هم همین چیز دا چیزو داشت گفت پس اینجا کمال چی وجود داره اتصال, اتصال. چرا چون جمله دوم تاکید جمله چیه اول. اوله حالا بریم مثال بعدی وقال قال ابو العلاء الناس للناس من بد و حضاره مردم برای مردم چه روسایی چه شهری هزارت استاد بله حوزه تو ما حوزه حاضرتن نه خوب هازرتی هست الناس و للناس من بدو وحاضره بعض لبعض وان لم يشعروا خدمه میگه مردم بله هاذره است میگه مردم برای مردم چه بادیه نشین نش شهریش بعضون لبعض و ان لم يشعروا خدمه بعضی برای بعضی دیگر چه هستند گذار هستند اگرچه که این احساس رو نکردن واقعیت جامعه جایی واقعیت اینه که انسان برای انسان چیه؟ یک کاری من انجام میدم فلفلو من میکارم شما اون خب خلاصه این جمله دوون که بعدون لب بعدون و ایلام یشورو خدمو داره اون جمله اولی رو بیان میکنه در جمله اولی گفته که مردم برای مردم هستند جمله دومی داره بیان میکنه که برای مردم چکار هستند خدمت گزارد پس اینجا میبینی که فصل هست و وصل نیست و علیکم السلام و گفت علیه و در مثال بعدی اومده یدبر الامر یفصل الآیات تدبیر امر میکند آیات رو تفصیل میکند ها خداوند سبحان این هوی هست که به الله برمیگرده خب در اینجا اگر دقت داشته باشید دو جمله ی یدبر دیگه نگفته و یفصل الآیات بلکه فصلش کرده بلکه چیش کرده چرا میگه به خاطری این که این یفصل الآیات بدل هست از یودبر امر چرا چون تفصیل آیات، آیه تدبیر و جز تدبیر و امور هست یا نیست، پس این بدل جز هست از اون بله، متوجه شدید؟ چون اینجا پس انقطاعی، نه اتصال، کمال اتصال وجود داره، واجب کی چه بشه؟ فصل, فصل بشه. و ابو الاطاهیه، ابو الاطاهیه میگه: یا صاحب الدنيا المحبب لها انت الذي لا ينقضي تعابوه خب در مثال چهارم ابو الاتاهیه میگه ای صاحب دنیا ای کسی که دنیا رو دوست داری تو کسی هستی که رنجهایش تموم نمیشه خب در این مثال میبینیم که جمله اولی انشاه هست نداه یا صاحب الدنیا و دومی خبریه هست انتا لذی لا قضی تعبوه اینجا کمال چی وجود داره؟ تباین تام اولی انشا و دومی خبر گفته بود اگر تباین هم تام باشه فصل چیه؟ بله سال بعدی و قال آخر گفته و اینم المرء و و همان مرد با دو کوچکش یعنی زبان و قلبش و همان مرد چه هست همون زبان و قلبش خب کل عمره این رهنون به مالدهی بعد میگه هر شخصی رهن هست به آنچه که در نزش وجود داره اصلا این دوتا دو تا جمله جدا کاملا جدا از هم هست دو جمله کاملا جدا است پس اینجا کماله باز هم تباین وجود داره وقال ابو تمام ليس الحجاب و عنك عن کلی املا اینجا شاعر میگه که مانعی که بین من و تو وجود داره دور نمی کند مرا از تو. امید مرا از تو. شاعر داره میگه اینی که من نمیتونم به تو برسم بین من و تو حجاب وجود داره. این دور نمیکنه اون امیدی رو که من به تو دارم. خب از این یک سوالی فهمیده میشه و در بیت دوم اون سؤال جواب میده. اون چیست؟ میگه ان السَّمَاءَ تُرَجَّحِينَ تَحْتَ جِبِ میگه آسمان زمانی مردم بهش امیدوارن که حجاب داشته باشه ابراز زمانی که بیان آسمانو گرفته باشن مردم امیدواره به چی میشند به باران خب میگه این ای که بین من و تو هست این حجابی که هست اینی که ما نمیتونیم پیشت بیاییم میگه این عمل و امیدو از من دور نمی کنه ولی این جوری مطرح کرده بعدن با یه بیتی داره رو میده که گویا در جواب سواله میگه همان ترک آسمان هم این از جواب دوم گفت فهمیده میشود که اولی سوال برای جواب سوالی هست بله این توهم بیاد که یه سوالی یک سائل گویا که اونو چکار کرده گویا که سوالی سائلی ازش پرسیده که است کو اون سوال اینه چطوری ها حجاب امیر بین تو و بین رسیدن به آرزوهایت مانع نمیشه گویا که سائلی از شاعر پرسیده که چطوری این حجاب شاه این حجاب امیر بین تو و بین رسیدن به آرزوهایت مانع نمیشه گویا که همچین سوالی ازش پرسیده اومده در جواب گفته همانطور که موقعی آسمان حجاب داشته باشه مردم بیشتر بهش میشن میشند امیدوارتر میشن پس اگر دقت در این بیت دوم بکنی یعنی متوجه میشی که یعنی گویا که اینو در واقع در جواب چی آورده سوالی دومی اول هستا نه دومی جوابه دومی جوابشه دیگه از ما از دومی میفهمیم که اولی... در اولی یک سوالی پوشیده هست وجود داره. سوال نه. سوال نه در دومی جواب شه دیگه. نه نه این نیست. بیا حالا برات میارم. دقت داشته باش. میگه انتکون تكون الثانيه جوابا ان سؤالن يفهموا من الاولی. من الاولى. دومی جواب باشه از سوالی که اون سوال فهمیده میشه از اولی. سوال از کدوم فهمیده میشه؟ از اولی خب داره جواب میده میگه موقعی که بهش میگن چطوری این معنی که بین تو امیر وجود داره مانع از رسیدن تو به آرزویت نمیشه میگه این سماه ترجه حینه تحت جب اینه از بیت اول فهمیده باله باله از بیت اول که فهمیده میشه درش سوالی هست پس اینا مواضع چی بودند فاصل بودد جایگاه های فصل.